بودی خوشبو در آدم زن نبوده بودی خوشبو در آدم زن نبوده فرشته موزایی برشتم دامو سوی بازر نبوده وچه با بوه پرست دارت مذر با مونه سویارو غم خارت مذر با وچه بوه پرست دارت مذر با مونه سویارو غم خارت مذر با بو. را به بر بر تو بوستون چا, چا دید درد هاشبو گهری له دورد موزر کو بو راد گل گست بوست چا چاله کوشت دید درد هاشبو گهری گلی خوشبو تر از موزر نابوته گلی خوشبو تر از موزر نابوته زریشتا مو زبی وزر نابوته فرشتا مو بوده لوژون به خدمت کردا زم و خسایدارو دنیاچ خردا بوده سر گودی خوش بود از مازر نبود گودی خوش بود از مازر نبود